محمد دستت را به من بده. آه خسته شدم. بیا کمی بالاتر استراحت کنیم آنجا یک رستوران است؟ بله، آنجا یک رستوران هست. آنجا صبحانه میخوریم به به عالیه. از این بالا تهران خیلی جالب است. بله میبینی؟ تهران خیلی بزرگ است. بله تهران خیلی بزرگ است و های بلندی دارد. آنجا را ببین. آن برج برج میلاد است. بله میبینم خیلی بلند است. برج میلاد یکی از بلندترین برج های دنیا هست. تهران را دوست دارم. تهران خیلی بزرگ و قشنگه است. آن ساختمان کجاست؟ عجله کن. بعدا به تو میگویم آن ساختمان کجاست؟